سلام عرض میکنم خدمتشن و نگان عزیز من شریفی هستم به این قسمت از پادکست حقوق من خوش آمدید در این قسمت امکان عقص محریه از پدر زوج رو بررسی میکنیم بارها و بارها سوال میشود که پدر زوج بسیار سربتمند است مگر این شخص پسر این پدر نیست پس چرا؟ مهریه‌ی این پسر را پدر نمیداد. ما یا ما می‌توانیم انبال پدر را با بات مهریه‌ی همسر مونتاژش فکریم. پسخ منفی است. سرعت پدر زوج هیچ تأثیری در پرداخت مهریه توسط زوج ندارد. بلکه اگر پدر زوج پرداخت مهریه توسط پسرش را زمانات کرده باشد، در اینجا می‌توان از پدر زوج. آن هم بابت زمانتی که کرده است محریه را دریافت نمون در غیر این صورت هیچ گونه اختامی به طرفیت پدر زوج که در واقع زنده است در غیر حیات است و بسیار هم سروتفنده است متصور نخواهد بود پس به اعتبار سروت پدر یک شخص نباید محریه تعین کرد و بعد به انتظار نشست که پدر آن شخص آن محریه را پرداخت بکند. خیلی چنین چیزی وجود ندارد.